مصنوی معنوی مولوی برنامه 127م مسال آوردن اشطور در بیان آن که در مخبر دولتی فر و اثر آن چون نبینی جای متهم داشتن باشد که او مقلد است در آن آن یکی پرسید اشطور را که هی از کجا می آیی؟ ای اقبال پی گفت از حمام گرم کوی تو گفت خود پیداست در زانوی تو مار موسا دید فرعون انود مهلت می خواست نرمی می نمود زیرکان گفتند بایستی که این تند تر گشتی چو هستو رب دین معجزه در اجدها گر مار بود، نخوت و خشم خداییش چه شد؟ رب اعلی گروی هستند در جلوس، بهر یک کرمه چی است این چاپلوس؟ نفس تو تا مست نقل است و نبید، دان که روحت خوشی غیبی ندید، که علامات است، زان دیدار نور، ات تجافی من که ان دار الغرور. مرغ چون بر آب شور می تند، آب شیرین را ندیدست و مدد. بلکه تقلید است آن ایمان او، روی ایمان را ندیده جان او. پس خطر باشد مقلد را عظیم، از ره و رهزن ز شیطان رجیم چون ببیند نور حق ایمن شود ز ازترابات شک او ساکن شود تا کف دریا نیاید سوی خاک کسل او آمد بود در استکاک خاکی است آن کف غریب است آب، در غریبی چاره نبود ز اضطراب چون که چشمش باز شد و نقش خواند دیو را بر وی دیگر دست نماند گرچه با رو خر اسرار گفت سرسری گفت و مقلدوار گفت آب را بستود و او تایق نبود رخ درید و جامع او عاشق نبود از منافق آزر رد آمد نخوب زان که در لب بود آن در قلوب بوی سیبش هست جزو سیب نیست بو در او جز از پای آسیب نیست حمله زن در میان کارزار نشکند صف بلکه گردد کارزار گرچه میبینی چشیران در صفش تیغ بگرفته، همه لرزد کفش وای آنکه عقل او ماده بود نفس زشتش نر و آماده بود لاجرم مغلوب باشد عقل او جز سوی خسران نباشد نقل او. ای خنک آن کس که عقلش نر بود. نفس زشتش ماده و مزتر بود. عقل جزوییش نرو و غالب بود. نفس انسا را خرد سالب بود. حمله ماده به صورت هم جری است، آفت او آن آنخر از خریست. وصف حیوانی بود بر زن فزون. زن که سوی رنگبو دارد رکون. رنگبوی سبززار آنخر شنید. جمله حجتها ز طبع او رمید. تشنه محتاج متر شد و نه. نفس را جوالبقر بود، صبر نه. اسپر آهن بود صبر. ای پدر. حق نبشته بر سپر جا از زفر. صد دلیل آرد مقلد در بیان. از قیاس گویدان را، نز عیان مشک آلوده است، الا مشک نیست. بوی مشک استش، ولی جز پشک نیست. تا که پشک مشک گردد ای مرید، سالها باید در آن روزه چرید. که نباید خرد و جو همچون خران، آهوانه در ختن چر ارغوان، جز قرنفل یا سمن یا گل مچر، رو به صحرای خوتن با آن نفر. معده را خو کن بدان ریحان و گل تا بیابی حکمت و قوت رسول خوی معده زین که و جو باز کن. خوردن ریحان و گل آغاز کن. میده تن سوی کهدان می کشد. دل سوی ریحان می کشد هر که کاه و جو خورد قربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود نیم تو مشک است و نیم پشک هین، هین مایفزا پشک، افضا مشک چین آن مقلد صد دلیل و صد بیان در زبان آرد ندارد هیچ جان چون که گوینده ندارد جان و فر گفته او را کی بود برگ و سمر میکند گستاخ مردم را براه او به جان لرزانتر است از برگ کا پس حدیثش گرچه بس با فر بود در حدیثش لرزه هم مزمر بود فرق میان دعوت شیخ کامل واصل و میان سخن ناقصان فاضل فضل تحصیلی بربسته شیخ نورانی زره آگاه کند با سخن هم نور را هم کند جهد کن تا مست و نورانی شوی تا حدیست را شود نورش روی هرچه در دو شاب جوشیده شود در عقیده تعم دوشابش بود. از جزر و سیب و به و از گردکان لذت دوشاب یابی تو از آن. علم اندر نور چون فرغرده شد پس ز علمت نور یابد قوم لد. هرچگوی باشد آن هم نورناک کاسمان هرگز نبارد غیر پاک آسمان شو ابر شو باران ببار. بار ناودان بارش کند نبود بکار آب اندر ناودان آریتی است آب اندر ابر و دریا فطرتی است فکر و اندیشه است مثل ناودان وحی و مکشوف است ابر و آسمان آب باران باغ صدرنگ آورد ناودان همسایه در جنگ آورد دوسه حمله برابر بح بحث کرد چون مقلد بود فریبه او بخرد تنتنه ادراک بینایی نداشت دمدمه روبه برو سکته گماشت هرس خوردن آنچنان کردش زلیل که زبونش کرد با 500 دلیل. حکایت آن مخنس و پرسیدن لوتی از او در حالت لباتک این خنجر از بهر چیست؟ گفت از برای آنکه که هر که با من بد اندیشد اشکمش بشگافم. لوتی بر سر او آمد شد میکرد و میگفت الحمدلله که من بد نمی با تو. بیت من بیت نیست، اقلیم است. حضل من حضل نیست، تعلیم است. کنته را لوتی در خانه برد سرنگون افگنده و در وای فشورد بر میانش خنجر دیدان لعین پس بگفتش بر میانت چیستین گفت آنکه با من یک بدمنش بد, بد بیاندیشد به درم اشکمش گفت لوتی حمد را که من بعد نینده با تو بفن چون که مردی نیست خنجرها چه سود چون نباشد دل ندارد سود خود از علی میراست داری زلفقار بازوی شعر خدا هستت بیار فسونی یاد داری از مسیح کو بودان دندان عیسی، ای قبه کشتی سازی ز توزه و فتو کو یکی ملاه کشتی همچو نوح شکستی گیرم ابراهیم وار کو بوت تن را فدا کردن بنار گر دلیلت هست اندر فعل آر تیغ چوبین را بدان کن زلفقار آن دلیلی که تو را مانع شود از عمل آن نقمت سانع بود خایفان راه را کردی دلیر از همه لرزانتری تو زیر زیر بر همه درس توکل می کنی در هوا تو را رگ می زنی. ای مخنس پیشرفته از سپاه بر دروغ ریش تو کیرت گوا چون زنا مردی دلاغنده بود ریش و سبلت موجب خنده بود توبه کن اشک باران چون متر ریش و سبلت را ز خنده باز خر داروی مردی بخور اندر عمل تا شبی خورشید گرم اندر حمل معده را بگذار و سوی دلخرام خرام تا که بی پرده آید سلام یک دوگام رو تکلف ساز خوش عشق گیرد گوشتو آنگاه کش غالب شدن حیله روباه بر استعسام و تعفف خر و کشیدن روباه خر را سوی شیر و بیشه روبه اندر حیله پای خود فشرد ریش خر بگرفت و آن خر را ببارد. مطرب آن خانقه کو تا که تفت دف زند که خر برفت و خر برفت. چون که خرگوش برد شیر بچاه، چون نیارد روبه خر تا گیا. گوش را بر و افسونها مخر. جز فسون آن ولی دادگر. آن فسون خوشتر از حلوای او. آن که صد حلواست خاک پای او. خونبهای خسروانی پر ای. مایه برده از مایه لبهای وی. عاشق مای باشد آن جان بعید. کو مایه لبهای لعلش را ندید. آب شیرین چون نبیند مرغ کور، چون نگردد گرد چشم آب شور، موسی جان سینه را سینا کند، توتیان کور را بینا کند. خسرو شیرین جان نوبت زده است، لاجرم در شهر قند ارزان شده است. یوسفان غیب لشکر میکشند. تنگ های قند و شکر می کشند. اشتران مصر را رو سوی ما، بشنوید ای توتیان بانگ درا. شهر ما فردا پر از شکر شود. شکر ارزان است، ارزان تر شود. در شکر غلطید ای حلبایییان همچو توتی کوری صفراییان نی شکر کوبید کار این و بس جان برافشانید، یار این است و بس یک ترش در شهر ما اینک نماند چونکه شیرین خسروان را بر نشاند. نقل بر نقل است و می بر می حلا بر مناره رو بزن بانگ سلا. سرکه نه ساله شیرین می شود. سنگ و مرمر لعل و زرین می شود. آفتاب اندر فلک دستک زنان، زره ها چون آشقان بازیکنان. چشمها مخمور شد از سبززار، گل شکوفه می کند بر شاخ سار. چشم دولت سهر مطلق می کند، روح شد منصور انالحق می زند گرخری را میبرد رو به ز سر گو ببر تو خرم باش و غم مخر حکایت آن شخص که از ترس خیشتن را در خانه انداخت رخها زرد چون زفران لبها کبود چون نیل دست لرزان چو برگ درخت خداوند خانه پرسید که خیر است، چه واقعه است؟ گفت، بیرون خر میگیرند به سخرهی. گفت، مبارک خر میگیرند، تو خر نیستی، چه میترسی؟ گفت، سخت به جد میگیرند. تمیز برخواسته است امروز. ترسم که مرا خر گیرند. آن یکی در خانه در می زرد رو و لب کبود و رنگ ریخت. صاحب خانه بگفتش خیر هست که همه لرزت تو را چون پیر دست. واقعه چون است؟ چون بگریختی. رنگ رخساره چونین چون ریختی. گفت بحر سخرای شاه هرون خر همه گیرند امروز از برون. گفت میگیرند کوخر کو خر جانم چون نی خر رو ترا زین چیست غم؟ گفت بس جدند و گرمندر گرفت. گر خرم گیرند هم نبود شگفت. بهر خرگیری براوردند دست. جد جد تمیز هم برخواست است. چونکه که به تمیزیان من سرورند، صاحب خر را بجای خر برند نیست شاه شهر ما بیهودگیر هست تمیزش سمع است و بسیر آدمی باشو ز خرگیران مترس خر ای ایسی دوران مترس چرخ چهارم هم ز نور تو پر است حاش لله که مقامت آخر است تو ز چرخ و اختران هم برتری گرچه بهره مسلحت در آخری میر آخر دیگر و خر دیگر است نه هران که اندر آخر شد خر است چه در افتادیم در دنبال خر از گلستان گویو و از گلهای تر از انار و از ترنج و شاخ سیب و از شراب و شاهدان به یا از آن دریا که موجش گوهر است، گوهرش گوینده و بیناور است یا از آن مرغان که گلچین می کنند، بیزه ها زرین و سیمین می کنند یا از آن بازان که کبکان پرورند، هم نگون اشکم همستان میپرند. نردبان است پنهان در جهان، پایه پایه تا انان آسمان. هر گره را نردبانی دیگر است، هر روش را آسمانی دیگر است، هر یکی از حال دیگر بی خبر ملک با پهنا و بی‌پایان و سر این در آن حیران که او از چیست خش وان در این خیره که حیرت چیستش صحن ارض الله واسع آمده. هر درختی از زمین سر زده بر بردرختان شاکرگویان برگ و شاخ که زهی ملک و زهی عرصه فراخ بلبلان گرد شکوفه پرگره که از چه می خوری ما را بده این سخن پایان ندارد کن رجو سوی آن روباه و شیر و سقم و جو بردن روباه آن خر را پیش شیر و جستن خر از شیر و اعتاب کردن روباه با شیر که هنوز خر دور بود تعجیل کردی و عذر گفتن شیر و لابه کردن روباه را شیر که برو بار دیگرش بفریب. چون که بر کوهش بسوی مرج برد، تا کند شیرش به حمله خرد و مرد، دور بود از شیر، وان شیر از نبرد، تا به نزدیک آمدن صبر نکرد. گنبده کرد از بلندی شیر حال، خود نبودش قوت و امکان حال. خرز دورش دید و برگشت و گریز، تا بزیر کوه تازان نال ریز. گفت روبه شیر را ای شاه ما چون نکردی صبر در وقت وقا تا به نزدیک تو آید آن قوی تا به اندک حمله غالب شوی. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب دور بود و حمله را دید و گریخت ضعف تو ظاهر شد و آب تو ریخت گفت من پنداشتم برجاست جاست زور تا بد این حد می ندانستم فطور نیز جو و حاجتم از حد گذشت، صبر و عقلم از تجوه یا بگشت، توانی بار دیگر از خرد، باز آوردن را مسترد، منت بسیار دارم از تو من، جهد کن باشد بیاریش بفن، گفت آره گر خدا یاری دهد بر دل او از اما مهره نهد، پس فراموشش شود حوله که دید، از خریه او نباشد این بعید، لیک چون منورا بر متاز تا ببادش نتهی از تعجیل باز، گفت، آره، تجربه کردم که من سخت رنجورم، مخلخل گشته تا به نزدیکم نیاید تمام من نجنبم، خفته باشم در قوام. رفت روبه گفت، عایشه همته، تا بپوشد اقل او را غفلته، توبه ها کرده است خر با کردگار که نگردد غره هر نابکار توبه را بفن برهم زنیم ما عدوی عقل و عهد روشنیم کله خر گوی فرزندان ماست فکرتش بازیچه دستان ماست عقل کن باشد ز دوران زحل پیش عقل کل ندارد آن محل. از اتارد و زهل دانا شدو. ما زداده کردگار لطف خو. علم الانسان خم تغرای ماست. علم و الله، مقصدهای ماست تربیه آن آفتاب روشنیم ربیالعلا از آن رو میزنیم تجربه گر دارد و با این همه بشکند صد تجربه زیندم دما، بو که توبه بشکند آن سست خو. در رسد شومی اشکستش در اوم.